قلسه 13 همه قواهد و 33 مؤسسه آموزش علیه امان روز علیه السلام دو آذر الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهلویت طاهرین المعصومین سیم و بخیتنا روحی و باه العالمین له الفدا ما بحث حفظ نظام رو داشتیم مرور می کردیم و باعث مربوط به این چند تا بحث رو من عرض کردم از مبادی تصوری ما شروع کردیم و مقلاتی رو به بحث کذاشتیم عنوان یک مقوله بسیار مهم و مفاهیمی مربوط به نظام رو گفتیم خود مفهوم نظام و از اون طرف نظم و نظام و نظم و اینطور موارد در اینجا مثلا هست بحث مربوط به ترکیبی این دو تعبیر حفظ نظام داریم قبلش مثلا ایجاد نظام تحقق اصول نظام بعد حفظ نظام اختلال نظام این مفاهیم را عرض کردیم به عنوان مبادی تصوری خب از یه منظر دیگه هم گفتیم چه نظامی مراده یک احتمالات مختلفی بود نظام اجتماعی رو داشتیم نظام عام رو ام از نظام دنیاوی اخروی رو داشتیم و همینطور نظام سیاسی که در فضای ادبیات رایج فقهی به طور طبیعی نظام اجتماعی خیلی جاها مد نظر بوده صد باب معاش اختلال اساس عشبنی آدم ممنونه یک نظام اجتماعی هرج و مرج در سطح اجتماعی منتهم نظام سیاسی هم دیدیم به کار میره طبیعتا در توابیر حضرت امام و بردخی از فوقه های دیگه این توابیر وجود داشت یکی دو مورد جالب در توابیر مرحوم های طلاق میرزا جواد اشاره کردیم اوصاف نظام رو گفتیم که نظام نوعی وصل نوعیت، وصل کلیت مد نظر هست بحث حکمش رو هم ارز کردیم پس یه بحث حفظ نظام داریم مفهوم اختلال نظام داریم و مفاهیم مشابه که هر کدام در جاهای مورد تمثب و اشاره قرار میگیره ارز کردیم که حکمش خب از منظر سیره و و به عنوان یکی امریکه در بستر اجتماعی وجود داره و مورد پذیرش هم عقل هم اوغلا به عنوان بنای اوغلا هست به عنوان حکم عقلی بعضی هم مورد اشاره قرار دادن اینو عرض کردیم بعضی به عنوان حکم اوغلایی مطرح کردند اشاره هم کردیم حکم عقلی یعنی یک صغرا کبری دقیق که دیگه ردخور نداره گبرایش سقرایش اما حوغلا اگر حکم، چیزی حکم حوغلا بخواشه باشه نوت درصدی نوت پنج درصدی درصدی لزومی نداره باشه کمتر هم میشه جای تخلیف همی مواردی هست یک نوع بناه حوغلاست حتی مشرب های مختلفی هم داری محقق اسفانی محقق علامه تبا طبع تبایشانی طبع مقداری روی کرده خاص خودشون رو در این ت اعتبارات و اقلال هم دارن خب یک مواردی رو هم عرض کردیم که مسادیق مختلفی در اینجا می توان تحقق پیدا کنیم در حفظ نظام اجتماعی در حفظ نظام سیاسی در این لاب لام مفاهم دیگه ای هم که به این مقبوله مطرح نزدیک میشه وقتی که میخوایم اشاره بکنیم پس یک مفهوم نظام داریم نظم و نظام داریم یک مفهوم میگیم ماهیت نظام چیه نظام اجتماعی نظام سیاسی از اون طرف متعلق حکم که حفظ و اختلال و اینهاست اینا رو داریم یه مفهومی دیگه هم که نزدیک میشه شبیه یه در حکمی هم داره مثلا گفته میشه واجبات نظامیه واجبات غیر نظامیه به تربیر محلوم ناینی واجبات نظامی اموری که وجوب اونها بر مکلف به لحاظ توقف نظام بر اونهاست واجبات غیر نظامی اموری که توقف نظام بر اونها نیست الواجبات ال در منیت الطالب جلد 1 الواجبات الغير النظامیه ای ما یجب المكلف لغیر ملاک توقف نظام العباد بلاد ال خوب اینو هم هست مفهوم وجوب حفظ نظام هم اشاره شده که از سنخ وجوب های کفایی است بعد اگر وجوب کفایی رو ما دو گونه توسلی و تعبدی بدانیم اینجا مقوله حفظ نظام از چه نوعی می توانه باشه از سنخ توسلی است یعنی واجبه کفایی توسلی خوانده شده مرحوم شیخ مرتزای در جلد پنج حالا طبق چاپ دارال کتاب این تحبیر رو ال الواجب الكفایت توسلی و هو الواجب لذی یراد و, و و سدور و من ای مکلف کان من غیر اشتراط قصد القربه و دا الامر الالهی که تکفین المیت و مبارات تحت الارض یا و مبارات تحت الارض و انقاض القرقا و اطعام الجائل مسکین و حفظ النظام بی اتخاذ الحرفه و المهن اینجا نظام یه جور نظام اجتماعی ها و توضیح ها علال مجتمع و لوعت ها به خوازه امور به قصد القربه یو علیها علیه ها پس الان نظام اجتماعی رو مرحوم شیخ البته این ببخشید این تعلیقه مرحوم آقای کلامتره به نظرم اگه اشتباه نکنم چون به تحبیر مجتمع دارن من اینجا حساس شدم که شیف هنسایی تحبیر مجتمع رو به کار میبره یا احتمالا حالا من نزدم پاورقی ولی فکر میکنم یاد داشت که کردم به عنوان بریان مرحوم کلانتر خب حفظ نظام پس اگر یک موقع مونگیم واجبه بعد از چه سنخی میشه واجبات نظامیه بعد خب ماهیت این وجوب چیه واجب کفایی میتوانه باشه بعد مرحوم ناین نا اینجا واجبات نظامی هم دو قسم کردن یه سری از اونها مثل تبابت که وجوب تبابت اینها از سنخ یه جون مشاقل هن وجوب این مشاقل سنخ مثل تبابت امثال اون متوجه فعل مکلفه اما در برخی از موارد اشان گفتن وجوب به اون نتیجه فعل داره میخوره مثل مثل فصل خود خسومت خود فصل خسومت باید انجام بگیرد واجب از فصل خسومت بشود بعد با چون این تفکیه که پس اونجا یه موقع میگیم آقا یجب علال ناس علا حاضر شخص علا طبیب عبت یه موقع با این مکلفه کار نداریم توجه به اون خود موضوع شده پس واجبات نظامیه که قرار در خدمت تدبیر و امور جامعه باشه و طبق اون بیانیه که مرحوم در واقع نائینی اشاره کردیم دارند که در واقع یک نوع بحث واجبات نظامی از غیر نظامی جدا شد اون واجبات نظامی اونه که توقف نظام برونه اینجا ما می‌بینیم که مرحوم نائینی اون تعبیر واجبات غیر نظامی رو هم یه لحظه باشه این سنخ تعریف واجبات غیر نظامیه من تاکید میکنم ای مایه جو علل مکلف لغیر ملاک توقف نظام عباد بل بلاد علی یه واجبیه اما چیه واجبیه که نظام بر اونها توقف نداره ببینید اگر بحث حالا ما در بحث های دیگه اینو میپردازیم در فقه مقارن سیاسی و یا در تاریخ اصول تاریخ اصول سنی رو که من میخواه از کنم به روی کرده مقاصدی که می‌رسیم، می‌گیم که این در فقه در اصول سنی و بعد شد یه بحث جدای متمایزی میان مقاصد و به یکی نوعی احکام رو چند دسته میکنن مقاصدی که ضروریه بعد مقاصد حاجی بعد مقاصد تحسینی یه جو سطفندیه یا انواع اقسام واجبات اینجا الان این خودش یه الگوی جالبیه که شما میشه بگید که اصلا واجباتی که یه جور فردیه یه موضوعیه اگر این انجام بگیره یا نگیره جامعه به هم نمیخوره بعضیا از این معاصرین آمدن مقابل اون روی کرده مقاصدی که مثلا اون قسمت ضروریات رو پنج یا شش قسمت از قبل میکردن گفتن حفظ نفس حفظ جان حفظ دین نام این نقدو رو که آقا اینا روی فردیه چرا مسئله اجتماعی رو نمیارید از این نکته برای نقدون میخوام استفاده کنم مثلا جمال الدین الاتیه و akiliye این شیخ نشین ها تدوین بحث کردم و بعضی کسای دیگه گفتن آقا یا ابن عاشور و اینو گفتن آقا اینا فردگرایانه است بیا مقاصد جمعی رو هم پیدا کنیم الان این بحث به درد اون میخوره که آقا واجبات رو بیایید بگید که بعض واجبات اگر انجام بگیره جامعه قوامش که پیدا میکنه اگر رعایت نشه اون قوامه جامعه به هم میخوره اون رو اسمش میذاریم واجبات نظامیه یعنی این یه الگوی تقسیم بندی هم میتوال باشه بعد ذیل خود این این تعبیر مرحوم ناینی این تقسیم هم هست که خب آقا بعضیاش یعنی متوجه فعل فعل مکلف شده بعضیاش متوجه خود اون نتیجهه که حالا مثال بعد ثمره فقهی هم برای این دارن مثلا تو موردی که دارن میفرماین که اخذ اجرت در دسته نخست جایزه اما در دسته دوم که خود اون فعل خود اون نتیجهه مورد بحثه مثلا وجوب قضاوت اونجا چون که به اون نتیجه فعل خورده اینجا اخذ اجرت ممنوعه چرا؟ چون که اون قسم نخست خودش مالک عملشه مکلف مالک عملشه بنابراین این میتونه اخذ اجرت بکنه اما اون دومی یه قدم فراتر پیشنهاد نگفته که این فعل بر شما واجبه گفته خود فعل واجبه گفته این کار این نتیجه باید حاصل بشه یعنی اونجا زمینه و کشش داره که شما بیاید مثلا اجرت بگیرید اما این دومی اصلاً گفته خود این کار هر طور باشه بی اجرت با اجرت یه جور به انجام میگه لزوم زمینه يه. خلاص اجرت رو داره میبنده یعنی چون این واجب رو داره سنگین میکنه که اصلا اجرت رو اینا جا پیدا نمیکنه مشروعیت پیدا نمیکنه ایشان در جایی دیگه هم مشابه این دیدگاه رو دارن در تعلق تکلیف به اموال یا تعلقش به نتیجه اموال. خب این تقریر نفتی جالبیه در تمونیه الموریج جلد 1 میگرد الواجبات النزامیه کله ها يجوز و اخذ الاجرا علیه موعد القضا پس واجبات نظامی رو تقسیم میکنن پس این موارد که به حفظ نظام برمیگرده و حفظ نظام نظام اونویی داره قضا یک مدل مواردگی مطفاوته سبا مکاند کفائیتن او عینیتن تعینیتن کاند او تخییر قضا خواهد رو باشیم اول الواجب علال هو و و عمله ایت لغت تکلیف اول وز بالمعنه المستری لا به نتیجه عمله لطیحی المعنه اسم مستری فا اینه و این علیه اینو انم عمله بل واجبه عینیه اما این مالک عملشه اینجا در واقع چی واجبه بر اجیر اینکه عملش رو بذل بکنه پس اینجا مالک بذل عمل میکنه ولی برچی اینجا مالک عملشه اجرت در برابر چی قرار میگیره اینجا میفهمم اجرت در از به ازای اون عمله که منات مالیت مال تقا بل اجتو تقا به اضای العمل لذیب و منات و مالیت المال الا به اضای قولهی من حیصل اصدار و هما و همه و همه لمکونا امرین خارجی یعنی متمایزن الا انما آن اعتبارن بین این عمل و این قول اینجا میتوانه شعره تفکیک میکنه اعتبارا فل شعره از تفکیک و بین وجوب المستر و ملکیت و اسم المستر ولی ست طبیب و بس سباق ارم کنم کتاب رو ولخیاد کلغازی فا این نفی با بلغ غذا تعلق تکلیف به نتیجت عمله پس این مثال تفکیک شد این اجرت اعمال تبابت یه مودل به, نت... به اون عمل میخوره اما در غذا به نتیجه عمل میخوره نتیجه عمل چیه؟ و هوا فصله الخسومته و هاذا از آخر جمع ملکه ای فلا یا جز لمول اجعله. این نتیجه عمل اگه تحقق پیدا کنو که اون اجرتی تحقیق نمیگره و اما سبا و نحروف اما وجه و علیه و بعض ما عمل اثره. حالا احبارات ادامه داره در مورد اموال باز همین بحث هست تفکیه معنای مستری و اسم مستری و اینها که بخواهد دوستان این رو ببینن منیت و طالبی هاشیت المکاسب این درس خارج مرحوم های طلا ناینیه تقریر مرحوم موسا نجفی خانساری متوفای 1363 یکی مرحوم محمد تبیه عمالی از ایشان تقریر داره از مرحوم ناینی این مکاسب رو یکی مرحوم موسا نجفی موسان ابن محمد النجفی الخانساری که ایشان 1363 مرحوم شده 40 سال کم کنید میشه سال شمسی 1363 چهل سال کم کنیم میشه سال 23 شمسی مرحوم محمد تقیامولی هم یه تقریر دیگه داره بعضی هم پراکنده مثلا مرحوم سید اول فضل شاید خانساری که قبرش بین قبلای طلب وحجت و شاید متحریان و سد اونم یه تقریراتی داره یه جایلت معلوم نیست قایبان. یه بخش های یه سری بحث ها از مرحوم آغازی یه سری بحث ها از مرحوم ناینی مونیت تالفی شرح مکاسب جلد یک صفحه پونزه و شونزه حالا اون الباقی هم بخونم بخوانم مشابهه تفکیک اعمال اموال تو بحث خمس و زکات و اینها اینم یک تفاوتی داره پس عرض اصلی اون چی بود این که اشان واجبات نظامیه رو که پس این واجبات نظامیه داریم یه واجبات غیر نظامیه واجبات نظامی اونهایی که زمان نظام جامعه به اونها منوط بعد خود اینا دو دسته میشن تفاوت حکمی هم پیدا خواهند کرد خب نکته دیگه این دیگه اینی که مرحوم نائینی در وجوب این واجبات نظامیه کفاییه می که این وجوب به نهر نقض دو تا احتماله که که بگیم وجوب این واجبات نظامیه نفسیه یه احتمال که بگیم نه وجوبش نفسی نیست یه جوری آرزیه میفرمایند که نفسی نیست این وجود آرزیه چرا؟ چون که به خاطر حفظ نظام واجب شدند. در همون جا، سف در همون کتاب جلد یک صفحه دو میفرمایم فعلاً آن تکساس و به اعتبار الحاق یعنی قسمت اقسامن اقسامن عرب، الحرام، والملو، والمستب، والموه. یه نکته پیچویشی از کنم. شما مباحث مختلف رو باید دوستان اونس بگیرند در لابلای مباحث متنوره فقهی و اصولی برند ردیابی کنند یه جاهایی ممکنه با جستجوی لفظی به همان محتوی رو پیدا کرد یه جاهایی با جستجوی معنایی اما نکته ای رو که شما پیدا میکنی یک واجه رو پیدا کنید، بعد قبلش کامل بخونید قبلش بعدش و این ربط رو خود شما پیدا کنید بعد یک کلمه یه حفظ نظام آمده الان مثلا این مطلی که من کماز کنم مشابه متن قبلی یک کلم آمده لحفظ نظام یا الواجبات رو نظام میاد هم شما باید اون زاویه دید رو تقویت کنید تا از دل اون محتوای مربوط بحث خود رو در بیارید خب اینجا الان این نکته مهمه ولی یک نوع نظم بخشی الان ما تو این بحث یه مسیری رفتیم در اشاره به سخن عطای مرحوم نایینی آمدیم تقسیم کردیم بعد آمدیم جلو واجب دست بندی که واجبات نظامیه خب بعد حالا از منظر ایشان با نمونه بحث مرحوم ناینی ولی نقطه زیبایی دارن که نوع وجوبش رو فرمودن واجب بالعرضه نه نفسی چرا؟ چون که به خاطر حفظ نظامه خب این بحث مربوط کجاست طبیعتاً لابلا بحث تکسف اول کتابه مکاسبه یلده یک صفحه دو همون اول کار شما با چی کار دارید؟ با این معقوله سر و کار دارید که تکسب حرام و حلال و مباه و اینا چگونه است؟ اشان میفرمواند تکسب احکام متنبهی داره بعضی مواردش حرامه، مکروهه، یه سنخش مستعبه، سنخش مباهه بعد میفرمواند که خب مثلا تکسب وجوبه ذاتی نداره ولی وجوب بلعرض پیدا میکنه بعد همین رو بر واجبات نظامی کفایی هم تطبیق میکنه پس بحث در حال تکثبه میگن وجوب اونجا چگونه است؟ بعد با یه اشاره این رو میبرن تو همین چارچوب پس اول تکسب رو میگن که وجوبش اونجا بالعرض همین رو میان تطبیق میکنن فعلا دو خط اینطوری در موضوع تکسب ادامهش دو سه خط در موضوع واجبات نظامی و حفظ نظام فعلا ان تکسب به اعتبار حکم یعنی قسم اقسام این عربه الحرام و المکروه و المصطبه و المباه نکار نداریم ولایت تصف بالوجوب ذاتن این تکسب اقسام مختلف داره اینجا متصفه وجوب ذاتی نیست اگه وجوب ذاتی داشت که چندو نمیشد نه امقدر یک اونو واجباً بلعرز خب آقا یه جای مکروهه یه جای مستحبه یه جای مکروه اگر حکمشینه پذیرای حکم دوم نیست چرا میتوانه پذیرای حکم دوم باشه خب این صحبت رو شما یک صحبت عامم در نظر بگیرید که البته ظرافی هم داره اما تمام احکام دیگه یا معمول و بسیاری از یا غالب یا همه احکام می توانیم اینو کنیم یک حکمی ابتداا میگیم واجبه یک حکمی میگیم به سبب بعد میگیم مسبب و حکمی هست یا نیست خب معمولا این تفاوتش خیلی بده داخل لابلایه کتاب فقه اصولی هم این رو مورد اشاره قرار میدن و اون چیه این که در یک مواردی وجوب تغییر میشه وجوب عینی میشه ظهور این صحبت دلینه که یعنی حکم مسئله تغییر کرده این یک روکد لابلای کتاب های فکر اصولی فراوانی هم این رو میبینید خوب. اما حضرت امام یه تحبیر دیگه ای دارن میگه نه اون وجوب سر جاشه اون استحباب سر جای خودشه مثلا نماز شب مستحب تغییرم نمیکنه ولی با امر والد مثلا فرض کنیم یا با نظر وجوب پیدا میکنه این وجوب نافی اون حکم اول نیست بسیاری از فقها ها یه جور صحبت میکنن که نه تحبیر تغییر یا بلکه تصریح میکنن خب اینجا واجبه حالا این در مورد بود طبیعتن این نکته در مورد واجبات نظامی هم خواهد بود که بحث ماست پس الان این در مورد تکسب فرمودن نه امقد یکونو بل بالعرز و منحو الواجبات و نظامی الکفاییت الاتی قد یعرزو الوجوب اینی خب یه جاهای واجب نظامی کفایی این هم حکم دوم بل بلعرز وجود پیدا میکنه اما بلعرز پس اون حکم ذاتی سر جای خودشه حالا در این مورد هم میگن مثلا در چه صورت وجوب اینی پیدا میکنه پس واجبات نظامیه لزومی نداره که از همه اول اصل حکمش وجوب باشه اون بگیم اقدامات نظامیه یک کفایی در این شرایط ممکنه مستحب باشه اون کار ممکنه واجب باشه اما برای شما مثلا مستحبه فرض کنیم قضاوت خودش یه کاریه از یه جهت به تعبیر مرحوم ناینی مثلا بگیم بگیم که نتیجهش اون فست خصومت وجوب داره به یک بگیم قضاوت هم وجوب داره اما برای شما چی؟ برای شما ممکنه استحباب داشته باشه خب اینجا این تعبیر میا که در چه... به چه نف این حکم دومی پیدا میکنه یا به تعبیر بعضی بگیم حکمش عوض میشه در این واجبات نظامی آیا حتما باید از اول واجب باشه؟ میگن نه ممکنه و من هو الواجبات و نظامی الکفایی واجب کفاییه منطقی وجوب کفایی لزومن ممکنه بود از اول نبوده باشه حکم اولیش ممکنه چی باشه استحباب باشه در چه صورت وجوب اینی میشه؟ ازا ان هست من یقوم بها به شخص خاص یه نفر فقط هست کسی دیگه ای نیست بس گردن اون رو میگیره فَإِنَّ سَنَاهِ عَلَّتِي تجب و كَفَائِيًّ امر يَتَعْلَقِ به ها ابتدائن او مثلا پیش سنع پیشگی و توانمندی مثلا تولید سلاح هستهی شما مثلا میگید که آقای فلانی تنها نفره که میتوان کار رو کنه خب برش میشه واجب کفائی واجب هست کسی دیگه هم نیست این واجب هست. ولی گردن این رو میگیره میشه اینجوری تا عینی قد یعرض قد یع هل وجوب العینی اول چی بود کفایی؟ مثال چی از صناع علتی تجبه کفایی هست لم یا لقل امرو به ها ابتدائن به هستکون واجبات نفسی هست خب آقا چرا میگیم بلعرز؟ میگه این وجوبه از اول به اون فعله نخورده بود ولی بلعرز اینجور شد که سلاط علمید و نحو و این نما تجبه لحفظ نظام خب این واجبات نظامی جوری شد که به این گفتید واجب چون که مقدمه حفظ نظام بود چون که اگر این واجب نباشه نظام حفظ نمیشه به خاطر همین هم اسم میشه گذاشتین واجبات نظامی یعنی به خاطر اون تحصیرش به خاطر اون قایتش که حفظ نظامه اسم اینا شد واجب ای نظامی نظامیه. البته یه تعبیر دیگه هم میشه به کار ببریم بگیم یه جور وجوب غیری داره ولی به هر حال تحکید بر اینه که این از اول واجب نبود خب پس ما حفظ نظام رو از دل این چی میفهمیم یک حکمیست که حفظ نظام در واقع یک بگیم. ما یک اناوین جزئی داریم یک اناوین در واقع فرعی داریم اناوین کلی داریم مقابل اناوین جزئی اون اناوین کلی بر اناوین جزئی هم تطفیق میکنه ابعاد حفظ نظام رو شما اینگونه ببینید در واقع دست بندی خلاصه این مقوله که احکام خلاصه واجبات نظامیه این خیلی مهمه و شما میگید که مثلا فعل علف راه رفتن به خودی خود بدون اینکه اناوین تارعه بدون اینکه اناوین آرزه رو ما در نظر بگیریم یک حکمی داره و با لحاظ اونها یه ککمه دوم پیدا میکنه پس عنوان اولی یک اختزایی داره طبق عنوان در واقع اولی شما ببینید اختزاش چیه اختزای عنوان اولی یه چیزه اختزای اناوین سانوی چیز دیگه است خب اناوین سانوی گایی قد ما ذهن اون محدود میشه به ازترار و ضرورت و اینا نه اون های سانوی یعنی عنوان ایجاد میکنه بر شما و به طبع اون عنوان سانوی و آرزی یک حق به دوم می با هم, هم تنافی ندارن نماز شب بدون لحاظ امر والد بدون لحاظ نظر بدون لحاظ این موارد دیگه اروزات اوارز دیگه این اصلاحباب داره اما اگه شما نظر کردید خب در نظرم ترجیح باید باشه که هست استحباب داره این ذاتش استحبابه ولی تو مصداق شما میشه واجب خب اگر یک فعلی مثلا فرض کنیم از منظر شما فقه ها فرض بگیریم که مثلا فوتبال بازی واجب است مستحب است بعد شما میبینید که اگه میخوایید باید فوتبال بازی کنید در این مسابقه شرکت کنید با اون طرف اسرائیلی میبینید خب اینجا تقویت کفره میگید آقا فرضه بگیرید که حالا چون احکام جدیدی و ممکنه بگن فوتبال آقا مستحبه خب فرض بگیریم چون حرفی یکی از این آقاینه نوند اندیش بزنه میشه چی؟ اینجا در مواجهه با اسرائیل میشه حرمت خب حال خود همون فوتبال دوباره یه مرحله قرب دردیم بینید موقع استحباب یا نه خب انجام دویدن مباه, مباه ایستادن مباه شما دست به پریبالا مباه اینجا یه عنوان سانوی مثلا پیدا میکنید میگید آقا مجموع این افعال موجب ادخال سرور در قلب خلاصه موافقین این تیم علفه میگید اجرد پس خوب شدید که عنوان سانوی پیدا کردید حالا من یه مقداری با لحن شخید هم دارم عرض میکنم میخوام تحکیدم بر اینه که اناوین اول سانویه رو خیلی تو سطوح مختلف در واقع در نظر بگیرید سطو در واقع سرطمندی اروز اناوین شما دو مرحله سه مرحله ممکنه روز روزعناوین داشته باشید یک فعلی به خودی خود جزئی میبینید دشت میگید آقا دقیدن اباهه داره اصدادن اباهه داره برداشتن توب برداشتن سنگ تکیه زدن به این خلاصه میز به این صندلی اباهه داره بعد میگید که آقا الان اگر ما بیایم اینجا مثلا جم شیب این حرکات رو با این ترکیبات انجام بدیم یه عروز عناوین جدیدی حاصل میشه مثلا تقویت خلاصه نشاط این مبارزین مثلا در جپو جنگ فرض کنیم اینها دارن الان با هم اگر حمله دشمنی نزی جای امنی هست با هم مثلا خلاصه کشتی میگیرن تقویت بدنی میشه پس یه اناوین جدیدی هم پیدا میشه در موضوع شناس اینه خب ما در مواجهه با مقوله نظام این رو داریم در واقع این نکته چی بود؟ یک مسئله خودش خب پس سوال این حفظ نظام اختلال نظام ماهیتش از لابلا این بحثا یه زاویهش این بود که دیدیم احکام مختلفی تعلق بهش میگیره خودش یه وجوبی پیدا میکنه ولی ببینیم ماهیتش چیه در واقع ماهیت حفظ نظام از این زاویه چیه این که در واقع میتونه نسبت به موضوع عناوین دیگه در واقع برخورد چی مواش داشته باشیم عنوان ثانوی داشته باشیم به مسابه عنوان ثانوی اختلال نظام همین طور اما آیا ما فقط بحث رو محدود به این بکنیم خیلی از بزرگواران حفظ نظام رو میگن عنوان سانوی، عنوان سانوی چرا؟ چون که نسبت به افعال خورده دارن در نظرش میگیرن این حرف درستیه اگر این گونه ما نگاه بکنیم میگیم آقا این حالت سانوی شد دیگه الان من اگر بیام مثلا اون نتیجه رو در نظر بگیرم اون ویژگی سانوی رو در نظر بگیرم شد یک عنوانی که مقتضی یک حکم دومی برای اون افعال خورده که خودشان یه حکم جدایی هم دارن،, عنوان اولی دارن اما آیا نمیشه ما اگه اینطور طور باشه باید تقلیل بدیم یه سری اناوین رو به عنوان سانوی بعد اون وقت کعنه یک چیز این سانوی بودن رو یه نگاه منفی ممکنه داشته باشیم کعنه یه چیز اضطراریه، چون که یکی از اناوین سانوی استراره چون که یکی از در واقع موارد مثلا ضرورت بعد موقتی هم تلقیش میکنیم اون ضرورت رو کرنه همه کرنه همه این اناوینی که ما می خواهیم بگیم یه جوری شپ استراری خیر در واقع اینه ما در نظر بگیریم که اناوین سانوی یه بخشش در واقع استرار اینجوری است که نمیتوان خلاصه ویژگی استراری و خلاصه سان در واقع موقت بودن حالا موقت بودن یکقدر تضادش متفاوته یه جوری اون حالت استراری بودن رو به دیگر اناوین سانوی خلاصه سرایت داد اگه این طور در نظر بگیریم میگیم ها این عنوانون بله نسبت به بعضی موارد عنوان سانویه ولی خودش الان یه چیزیه یعنی نباید نگاه درجه دو به این مقوله کرد نگاه درجه دو به مقوله در واقع به عنوان حفظ نظام اختلال نظام در واقع یه مقداری خلاصه تقلیل بحثه این مختزی تقلیل رو شما باید بذارید کنار در واقع یه موقع ببینید کنه خودش این رو نگیستان مثلا سانوی رو در مقابل اناوین اولی یک چیز ضعیف موقتی درجه دوگه اگه تلقی کنید همیشه یه نگاه شبه منفی یا منفی نسبت به این عنوان خواهید داشت. ولی شما دنبال چی هستید؟ شاره به شما گفته آقا برو دنبال احکام من اجرای احکام من داشته باش احکام من دو گونه است یه جایی متوجه اناوین اولیه است یه جایی اناوین سانوی و اناوین سانوی هم به صورت فل جمله مق... میتوانن به انهای مختلف مقدم بر اناوین اولیه بشند خب اون یه بحث دیگه است فیل جمله نمیگیم بل جمله اناوینه سانوی خلاصا میتوانه مقدم بشن اما اینجا نمیگیم بل جمله چون که یه جای باید کشش داشته باشه صرف این که مثلا بگیم ما یه احکامی از جیب و مارک در بیاریم خلاصه و بخوایم اونها رو تحمل کنیم نه بستگی داره به انهای مختلف از به حیث حکومت به حیثیت ورود اینا ادلهشون بعد ببینیم چیه حاکمیت داره حکومت داره یا مثلا خدمت شما عرض کنم به واسط بعضی چیز ذهن من مختل میکنه یعنی موبالی لحظه پیامکی آمد از دوستان تربیت ما در ذهنم مختل شد خیلی من شما از کنم پس اینجا الان شما یک ای دارید شهاره دیگه نمیگه که فقط برو عنوان اولی رو بچست در واقع رعایت و لحاظ لحاظ و رعایت اناوین سانبی خودش در واقع برای شعره موضوعیت داره خب اگه موضوعیت داره پس عنوان مهمی مثل حفظ نظام اهمیت کلیدی خاص خودش رو داره در واقع اینجا در امر جامع در امر در مقوله اداره نظام اجتماعی بگیم اداره جامعه لحاظ اناوین مهم فوقانی در واقع اینجا اه اهمیت داره. اون تعبیر اول ساوی که میگیم مینظر رهزنه. این تعبیر اناوین فوقانی مهمه خب این ما لزومی نداره حتما بگیم که عنوان اولی حرف حرف چند حرف درستی عنوان درستیه احکام ساوی. ولی ببینید الان اگر ما بیاییم موضوعات رو تحلیل بکنیم میبینیم این یک شاکیلیده شما مثلا تمسک میکنید در بحث غناب لغویت در اونجا شما سطوحی اون تعبیر سطوندی روز اناوین رو در نظر بگیرید ما اناوین تحتانی داریم اگر این اسروه پذیرید اناوین فوقانی داریم الان اگر گفتید اناوین تحتانی فوقانی درجه یک دو بهش نمیدید اینجا اناوین تحتانی ما مستقیمه یعنی بدون اینکه که شیعه دیگه در نظر بگیریم یه اختزایی داره حتی تو احکام ببید مثال من کنم شما میگید که نماز جماعت به خودی خود مستحبه برمیگردم خدمتشو مستحبه اما اگر ترک بشه خود این درست نیست تو جساله میام خب با توجب شرایط صرفا لحاظ شرایط دیگه اروز اناوین دیگه است یه جایی میشه این اناوین تحتانی فوقانی بگیم, بگیم. مثلا میگیم غنا غنا چیه؟ یک سوتیست با یه ویژگی هایی خب این الان یک عنوان در واقع مستقیمه اینم بد نیست عنوان در واقع اناوین مباشری که همه اول کار وجود داره اناوین دیگه هم وجود داره که یه با واسطه است در ای حالت خاص مثلا میگید غنا به غنا توابیر آمتر دیگه هم میتوانید به کار ببرید بگید که اگر اون عنوان آمد در تو یه حکم خاص خودش هم داره یه جاهایی ببینید این به درد تحلیل حکم داشتنم میخوره که شما میگید این غنا لحوه است این غنا لغو است یعنی از یک مقوله تو سطوح مختلف میتوانید اناوین جور و جور انتظاه بکنید به این شی میگید دست به همین دست میتوانید بگید جسم خب هر کدام یه اختزایی داره این اناوینگایی قد جنبه صفتی داره مثلا لحویت و لقویت خب الان حفظ نظام یک عنوان فعلی است میگیم بنده حفظ نظام کردم شما حفظ نظام کردید شما اختلال نظام به وجود آوردید خب این اختلال نظام عنوان دومیه شما چه کار کردید؟ نه حالا یک کسی آمده احتکار کرده خب احتکارم هم خودش میتوانه یه عنوان انتظایی باشه شما میگید آقا این آقا چه کار کرد؟ میگید من دیدم این اجناسی برداشت برد تو این ساختمان خب میاد از این مفهوم انبار کردن می میکنید بعد یک کسی دیگه میاد با اضافه کردن یه حیث دیگه عنوان دیگه بالاتری، یا حالا بالاتر, حال بالاتر نباشه. به هرهای عنوان دیگه انتظار میکنه شما فقط میبینید یه آدمی، اشیایی رو کارتون کارتون میبره توی ساختمان میشه بگید آقا او انتقال داد میتوانید بگید انبار کرد چه موقع میگید انبار کرد اگر مثلا بدانید برفض قصدش اینه که یه مدت اینجا بمانه سلامت بمانه سالم بمانه و آب نخوره زیر آفتاب نوارشه اگر بدانید که به قصد مثلا حفظ و سیانت باشه یا نگهداری بلند مدت باشه بهش میگین انبار کردن اما اگر بدانید که قصدش فقط داره حفظ نیست قصد قصدش پنهان کردن موقت یا طولانی مدت تا بعد یه موقع مناسب بیاره وارد بازار کنیم، بعد با قیمت بالا بفروشه. اینجا عنوان احتکار رو خب شما میتوه انتظار کنید یک کسی دیگه میگه من دیدم این اشیا رو برد اونجا چرا؟ چون که میخوا اونجا اینا رو جمع کنه اینا رو تخمیر کنه اسمش دیگه نمیذاره انبار کردن اسمش رو نمیذاره احتکار اسمش رو میذاره چی؟ از بین بردن اموال یک کسی دیگه میگه احتکار اسمش نیست میگه زخیر سازی غذا برای روز نوادای جامعه است یه کمی همی به اون انبار کردن نزدیک میشه پس یه جاهایی اناوین مختلف میتوانید شما انتظار کنید در واقع انتظار اناوین متنوع از افعال اولیه از اناوین در واقع اناوین اولیه با لحاظ حسیات و غایقات قد متنوع خب انبار کردن شد یک مقوله احتکار کردن یکی میگیم ذخیره غذایی عناوین مختلفی میشه بگیریم و بعد نتیجه چی میشه مثلا خب میریم بالاتر اینجا وقتی که کسی احتکار میکنه دوباره یه عنوان دومی از دو دلش در میام میگیم چی میگیم خلاصه این مقتضی اختلال نظامه اما اگر بگیم زخیره سازی زخیره سازی برای روز موادای جامعه این میشه چی؟ این میشه حفظ مختزی حفظ نظام چرا؟ چون که یه موقع کم میاریم پس در واقع مختزی انتظاه مفهوم حفظ نظام یا اختلال نظامه از یه چیز بود با لحاظ هیسیات انگیزه ها اقراض خلاصه برداشت خودش با ویژگی ها ویژگی های انسانی و غیر انسانی شما یه اناوین خلاصه آمی انتظار کردید تا برسیم به اختلال بنابراین اختلال نظام حفظ نظام ماهیتش اینه که یک لحاظ‌هایی هم باید بکنید حیثیتاتی هم لحاظ بکنید تا این عنوان انتزاع بشه بله، بفرمایید